گل ز گلستان جهان ما را بس زین چمن سایه آن سر روان ما را بس من و هم صحبتی اهل ریا دورم با از گرانان جهان رت گران ما را بس قصر فردوس به پاداش عمل می بخشند ما که رندیم و گدا دیر مخان ما را بس. بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین که این اشارت جهان گذران ما را بس. نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان گر شما را نبسین سود و زیان ما را بس؟ یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم دولت صحبت آن مونس جان ما را بس از در خیش خدا را به بهشتم مفرست که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس حافظ از مشرب قسمت گله نانصافی است چون آب و غزل‌های روان ما را بس